رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی بانوم و یاد خداوند متعال با عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان گرامی و همراهان برنامه رخداد خدمت دوستان عرض سلام و ادب و احترام داریم. خیلی متشکریم از اینکه در پنج قسمت گذشته برنامه همراه ما بودید و با حوصله عرایز ما و فرمایشات میهمان گرامی برنامه رو تحمل کردید. ما در برنامه های گذشته شروع کردیم برنامه تکمیل و سیر تدوین نظریه داروید. در آخر برنامه گذشته بنده عرض کردم که نظریه تکامل داروین ستون خیمه مدرنیسم و اگه این ستون سقوط بکنه کل خیمه بر سر مدرنیسم آوار خواهد شد بنابراین بهمانند بمانند یک ایدئولوژی الان داره توی دنیا باهاش رفتار میشه بسیار هم متأسفانه بسیار متأسفانه عمل میشه نه یک تئوری علمی که به اثبات رسیده باشه و ما میدانیم که بسیاری از مردم اظهارات زد اون رو در واقع خیلی ها نمی پذیرن. این انقدر جا این یک مثلا. نظریه اثبات نشده رو بله. به عنوان یک اصل اثبات شده جا زدن و به خرد خلق الله دادن دقیقا شما میرید انواع نظریه های علمی مختلف وجود داره مثل فیز... مکانیک کوانتوم یا تئوری زنجیره در فیزیک و کیهان که اگه کسایی با این نظریه مخالفت کن هیچ کس رو از دانشگاه اخراج نمی‌کنه. و هیچ کس به خاطر برزبان راندن حمله هم به این نظریه اینا رو در واقع حمله متقابل انجام نمیده و مانه ارتقای شغلی نمیشه. یه تئوریه ولی برعکس همین نظریه ها نظر تکامل کاملا متفاوته زیرا که یک تئوری یک ایدولوژیه و نه علم متعارف. اگه شما استاد زیست شناسی توی یه دانشگاه به خصوص در دنیای انگلوسک ساکسون و یا مثلا در دنیای لاتین ایتالیا یا مثلا یونان میواد آلمان و فرانسه باشید اگه طبق زمینه های کاملا علمی با نظر نظریه تکامل مخالفت بوزید فردی مطرود در بله آی دکتر <تصفح> از این موارد چند مورد دیگه هم هست که ما در بخش‌های آینده بهش خارج رسید که همین تعصب رو غربی‌ها نسبت بهش نشون میدن تعصب واقعا بله. که آدم متوجهش نمیشه چرا اینا اینقدر این پافشاری اونایی که منتقد این نظریه حتی در اون موقع بودن هم اصران او بودن که خیلی کم هم نبودن ولی چون که گفتمان غالب در اون دوره گفتمان غالب حالا بهتر ارز بکنم و اون چیزی که مسلط بوده هژمونیک بوده در اون دوره نتونستن فائق بیان و داروین رو متقاعد بکنن از این منظر به این مسئله نگاه میکنن که این دیدگاه ادعای علمی این تئوری که در پی توضیح پدیده علمی خاصیه ما که مخالفش هستیم در تسلیم شدن به این فشار فشاری که اون موقع بوده بر علیه اون نظر، مخالفان اون نظریه فشار بسیار گسترده بوده و در این حال چون میدونی که وقتی که گفتمانی مسلط میشه در واقع حالت ایدئولوژیک به خودش میگیره یه خشونت کلامی خاصی هم در واقع در کارون میشه زمانی که اینجور نظریات نقد میشن فوری از شما مردم میپرسن که خب شما چه اسناد و مدارک و منابعی بر این دارین بله زمانی که بهشون میگین شما چه اسناد و مدارک, مدارک و منابعی برای حرفتون دارین میگن چون همه اینو دارن میگن دیگه بله دقیقاً چون همه دارن میگن و هیچ وقت از اول از اون کسی که اینو شنیدن هر جا که بله. بوده نگفتن آقای منبعش چیه سندش چیه فقط تذیر افتن تذیر و متعهد متاسف... بله متاسفانه چون فیلسوف اولیه یونان به عنوان معلم بزرگ تاریخ سقراط گفته که اکثریت فضیلت نمیاره نظر اگه ولی متاسفانه در این مورد اکثریتی که فضیلت میاره ولی شما وقتی که با این مخالفت میکنید و یک تئوری علمی رو بر علم باهاش مخالفت میکنید به عنوان یه فرد مطرود در واقع میشید ما اون موقعی که مطرح شد مخالفت از دید آفرینندگی مخالفت میشد به نظریه چون مسئله هم حی و محیی ریشه توراتی هم داره فقط قرآن که نیومده، بله. هم تورات انجیل هم در واقع این ریشه وجود داره حسب مورد این مسئله اون موقع حتی خیلی همین همینو میگن میگن دلیل اصلی اون مبارزه با همین مسئله بود حالا ما خیلی نمیخوایم حالا مسئله خیلی بنیادی نگاه کنیم یا فاندامنتالیستی نگاه بکنیم این مثلا اینجوری نیست چون که حتی شما فلسفه سنتی مسیحیت هم حتی که فلسفه سنتی مسیحیت شما میبینید که مثلا اکویناس با اون که افکار مثلا ارسطو رو هم وارد فلسفه مسیحیت میکنه بتیش هم میشه ولی در این حال پایه های سکولاریزم غربی رو هم شکل میده چون میدونی که پایه های سکولاریزم اول تو مسیحیت شکل میگیره با. بعد وارد فلسفه میشه بعد وارد علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی میشه آخر هم وارد حقوق میشه ولی سکولاریزم حقوقی به وجود میاد این مسئله چون اون موقع این سکولاریزم در ای بوده که بیشتر از فلسفه اومده بود داشت در واقع چی میگم بعد از متدولوژی ما اتیمولوژی داریم یه متودولوژی داریم یه ترمینولوژی داریم آخرش اپیدمولوژی داریم بله. وقتی که اپیدمی میشه اپیدمولوژی همون از کلمه اپیدمی میاد دیگه یه نظریه میاد تو فلسفه روش پرداخت نمیشه بعد فراگیر میشه. بله فراگیر میشه اپیدمی میشه تبدیل و تبدیل به پارادایم میشه چتری میشه پارادایم شدن نظریه یعنی چتری شدن یه نظریه لذا اون موقع وقتی که این نظریه به وجود اومد اومده مخالفان میگفتن که اصلا از دیده زیست شناختی نمیگفتن که این نظریه درست هیچ زیست شناسی اون موقع اینو تایید خیلی خیلی جالبه اونایی که موافقت کردند و استقبال کردند فیلسوفها بودن بیشتر اونایی که فلسفه روشنگری رو در واقع دنبال بله. میکردن فلسفه سکولاریزم دنبال میکردن و در واقع اینجا ما میبینیم که مدرنیته اون چون مدرنیته غربی از قبل شروع شده بود داروی مالقرد 19 هستش و ما میگیم که ستون خیمی مدرنیته هست یعنی که مدرنیته تا اون موقع اپیدمیک نشده بود بعد از این نظریه هست که در واقع اپیدمیک میشه بله. با اون که خود مارکسیسم که قسمتی از مدرنیت را حتی بلرزه در آورد که 80 سال 90 سال کل دنیای مدرن رو اصلا به چالش کشید نظریش مثلثی بود دیگه بله از هگل و داروین و فورباخ گرفته بود که دیالکتیک رو از هگل گرفت تکامل و انتخاب طبیعی رو از همین داروین گرفت و بحث داروینیسم اجتماعی رو وارد کرد و جالبه که همون موقع هستش که بحث پوزیتیویسم توی غرب وجود میاد درست پوزیتیویسم فلسفی رو خب ما توی اندشه های بیکن میبینیم ولی اینکه پوزیتیویسم شما بیای چون بیکن هم بعد از اینکه نجوم بتلمیوسی زیر سوال میره با اندشه های کپلر و کوپرنیک تو اندشه های طبیعی میپذیرن پوزیتیویسم رو 233 سال این چیز بوده رسم بوده ولی همین نظریه داروین باعث میشه که این مسئله پوزیتیویسم جالبه با اون که شناختی بوده با اون که یه چیز در علوم طبیعی بود مال علوم انسانی نبوده این مسئله باعث میشه که پوزیتیویسم وارد علوم اجتماعی و علوم سیاسی میشه و داروینیسم اجتماعی در واقع اسم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما وقتی که میگید جهان قاعده داره. چون میدید اساس و پودت در چیه این چقدر نظری داروزی نیست به پوزیتیویسم کمک کرد پوزیتیویسم مدعای اصلیش چیه اینه که جهان قاعده داره قدیما میگفتن که مثلا زلزله میاد چون که مثلا فلان کار اتفاق میفته یا به قول برخی از هزارات مثلا بیهجابی هستش یا مثلا بعد تا شد که اینو دلائل زمین شناختی داره پس جهان قاعده داره یه جهان قاعده داره و این قواعد جهان قابل هست بعد از این نظریه داروین اینو بالاتر بردن گفتن که این جهانی که قاعده داره و این قواعد قابل شناسای قابل دستکاریین هم. همونطور که ما توی طبیعت میتونیم دستکاری بکنیم همونطور که ما میتونیم توی علوم طبیعی علوم زیستی میتونیم دست ببریم داخل علوم اجتماعی و علوم انسانی میتونیم دست ببریم یعنی روی انسان ها هم میتونیم دست ببریم بله. و ما اینجاست سر به وجود آمدن چنین نظریه رو ما میفهمیم که هدف از این نظریه چی بوده؟ این بوده که انسان هم به خود طبیعت در واقع ملحق بشه مفهوم انسان به عنوان یک چیزی که تو این طبیعت اشرف هستش، بالاتر هستش از نباتات، از حیوانات، از همه موجودات دیگه ولی مدعای اصلی این نظریه اینه میگه که نه این هم جزوی از طبیعت قوانین طبیعت هم بر اون حاکمه و ما میتونیم همونطور که روی این طبیعت شناخت پیدا بکنیم حالا شناخت پیدا کردیش کار نظر انسان شناسی خب یکی از رشته های بسیار بزرگ و بسیار گسترده هستش آده. میگه که ما روی پدیده‌های اجتماعی و انسانی حتی میتونیم دستکاری هم بکنیم یعنی هم روی احساسات چون مثلا انسان علاوه بر این چیزای زیستی و در واقع چیز قریزی که بقیه حیوانت هم داره خب نفس ناطقه هم داره بله. و قوی عاقله هم داره اینها در واقع دنبال که این قوه آقله در واقع از بین بره حالا من خیلی به این نظریه های در واقع دای جان اینها اعتقادی ندارم ولی نتیجه نظریه داروین همین بوده که بله. یک افراد خاص افراد خاصی که رشنال هستن به قول افلاتون. که فقط اونها رشنال و بقیه رشنال نیستن که یعنی. خب کانت گفته بود که همه رشنالن همه تا حدی یک درجه از عقل رو دارن و میتونن به معرفت برسن میتونن به اپیستم برسن ولی حاصل نظریه داروین چی شد کمک به اون جریانی از پوزیتیویسم شد که ما تو علوم انسانی علوم اجتماعی همه چیز ثابت هست ریاضی هست دو, دو تا چهار تاست مثل مثلا یخ مثل مثلا مسال مربوط به جمادات انسان و حیوانات همونطور که ما میتونیم قوانین حاکم اونها رو کشف بکنیم علاوه بر کشف کردن میتونیم رو اونها دست ببریم رو قوانین حاکمه بر انسان میتونیم دست ببریم ام. لذا اون جریانی که میخواست این رو تقویت کنه از راه این نظریه داروینیسم تقویت شد و از اون نظریهای داروینیسم اجتماعی برخاست. که ما میبینیم که بعد از اون اصلا فاشیزم میاد از این بر فاشیزم از چی برخاست از چه چیزی برخاست از همین مدرنیسم برخاست حاصل مدرنیت است. حاصل خرد مدرن هست حاصل خرد مدرن که اولا انسان رو تحقیر میکنه و انقدر تکراری هستش که شما مثلا من به دوستانم میگم توصی رمان تحوّی ژامپل ساتر رو بخونن که بهترین رمان فلسفی دنیاست که این انسانی که میاد سرگشت نمیشه از این مدرنیت از این تکرارش از این چیزی که نگاه تکراری به انسان داره نگاهی که مثل جمادات به انسان داره این مدرنیت و خرد مدرن و تحقیرامزی که به انسان داره از حالت تحوه میگیره در واقع بیننده و شنونده که در واقع مخاطب این فلسفه مدرنیت است. لذا اینجا میبینیم که میاد و اندیشمندان پست که اندیشمندان میان بر مدرنیته نقد وارد میکنن خب بیشترش نقداشون فلسفی و تا به حال برای نظریه داروین توی زیست شناسی کسی نتونسته در واقع قد علم بکنه و حتی همون افراد پست مودرنی که به پایه‌های مدرنیسم امتقاد میکنن جالبه که از داروینیسم حرفی نمیزنن مثلا ژاک دریدا مثلا واسازی رو مطرح میکنه به زبان مثلا به مفهوم زبان اعتراض داره مثلا میگه که این زبان انگلیسی که انگلو ساکسون ها تو این دو قرن اخیر دنیا رو قبضه کردن بله. ریشه در اصلا خود این زبان اصلا ساختار زبان یه ساختاری هستش که میل به سلطه داره میله به اصلا هژمونی داره هژمونی که اصلاً. اصلا ساختارش هژمونی که یا مثلا فیلیکس گاتاری و ژیل دلوز تحت نظریه دانش ریزوماتیک ایرادی که به مدرنیت وارد میکن ایراد علم سلسله مراتبی و عمودی است این علم ایراد علم افقی باشه حالت ریزوماتیک از ریزوزوم گرفتن از ریشه های میشه. درختان یا حالت افقی بیشتر رشد میکنه تا عمود لازم مثلا نظام علمی سلسله مراتبی رو نمیپسندن و این نوع نظام علمی رو نقد میکنن و هیچ کس حتی طبیعی ها هم در واقع وارد نمیشن به این مسئله داروینیسم لذا میگه آقای ابراهیم یه دینانی با اون که حالا خود بنده هم خیلی نقط های زیادی به وارده میگه یکی فلسفه توی قدر بلا شده کنیزک علم شده کنیزک علم. یعنی مثلا توی قرب نمیاد که مثلا علم رو پیش ببره بلکه یک کنیزک زیبارویی هست که بیشتر سرویس میده به چیزهای مختلف قرب. و هر چیزی هم در طول تاریخ علم نشون داده هر شاخه علمی که میاد فلسفه رو تحقیر بکنه میاد عقب میمونه مثلا شما شاید به نظرتون بیاد الان مثلا ببخشید حیوانات یه اولاق میتونه زلزله رو پیشبینی بکنه بله. شنیدیم دیگه تو عبام الناس بله بله. شنیدیم که مثلا قبل از زلزله تا یکی دو سال قبل از زلزله با... ولی فیزیک نان تا حال چرا چون که فیزیک اومده فلسفه رو تحقیر کرده شما متافیزیکید ما فیزیک هستیم ولی مثلا هر علمی که تونسته فلسفه رو به خدمت خودش بگیره مثلا توی قرب بسیار مثلا علوم اجتماعی مثلا پزشکی جزای مختلف فلسفه رو به خدمت خودشون گرفتن و علوم انسانی توی قرب اینو فهمیده چون مثلا تو کشور ما اکثرا خیلی فکر میگوه اگه مثلا خانوادهای با کلاس دوستان بچه هاشون مثلا فنی بخونن ولی مثلا تو کشوری های قربی برعکسه معمولا جزای خانوادهای با کلاس دوستان علوم انسانی بچه هاشون بخونن هم از هم حاصله... بله خوشگوار استعمار برای ماست که بله یک بحث دیگه توی بحث آموزشی کشور ماست که بعد هم این دوره باطل ادامه داره. ادامه داره. مثلا شما خود با کلاس توی خر بیشتر مثلا طرف مثلا وقتی فلسفه بخونه افتخاره. همیشه مثالی میزنم میگن می شما اونجا از در یک اتاق تو دانشگاه وارد بشین. اگه رشته فنی باشه همه چهره تیرو و موها مشکیه دقیقاً اگر کلاس های علوم انسانی باشه همه چشما روشن و موها بوره دقیقاً بچه های خودشون رو میفرستن به این رشت ها و ما رو به عنوان کارگر استخدام میکنن متاسف دقیقا می. بله جهان سبومیان میان میگن استخدام کارهای خودشون میکنین که کارشون در واقع چیزشون عقب نمو آه. بله حالا پس ما می‌بینیم که دلایل این که این همین داروینیسم توی علوم طبیعی غرب به چالش کشیده نمیشه چرا چون که علوم انسان توی غرب فلسفه رو به عنوان کنیزک خودش به خدمت گرفته و هژمونیک کرده و برای علوم دیگر برای چیزای دیگر در شاخه های مختلف دکترین تولید میکنه و نظریه تولید میکنه و اجازه این که نظریاتی برخلاف اون نظم هم میرزه نظم به هم میریده و خیلی نمیتونن اجازه هم بدن شاید اصلا ماها هم اگه مثلا جای اونها بودیم نمیذاشتیم که مثلا یک نظریه بیاد که مثلا پته مثلا اونها رو الزرو اب از اتاق و فرمان دستور میاد که برنامه رو به اتمام هستش من اعتراف میکنم که استفاده کرد. خواهش میکنم. ما هنوز وارد نقد، نقده هایی که به نظریه داروین وارد شده هنوز نتونستیم فعلاً برسیم هنو زمان هنوز زمان زیاد داریم زمان ولی بحث با ریشه یابی درستی به نظر من داره پیش میره. ولی بله این ریشه باید اول گفته بشه. گفته بشه. ولی برای چارچوبی که برنامه بعدی به نظر من شرکت دانگان از آماده کنیم که حالا بله. اگه خواستن مثلا وارد برنامه در واقع مباحث برنامه ما آشنا بشن. ما دیگه از برنامه هفتم وارد نقد بشیم نقد از دیدگاه فلاسفه نقد از دیدگاه حتی طبیعت دانهای غربی که حالا کم هم نیستن ولی خب هژمونیک نیست تکوتو کست ولی بله بله. بله نقد و نقد از دیدگاه اندیشمندان ایرانی هم به نظریه داروین همچنین نقد منطقی منطق موجود در طبیعت که هستش بیش وارد بشه وارد بشیم و از این بحث های فلسفی فاصله بگیریم نه تنها هویت موضوع بلکه ماهیتش رو هم بررسی کنیم در این باب فلسفه هم که فرمودین حتی در بازاندیشی در تاریخی که الان جوان نوگرای کشورم داره انجام میدن زمانی که رو رو میشن با باورمندان به تاریخ رسمی رسمی بله که یک چیزایی رو باور دارم مثل همین نظریه داروین و نمیشه دست بهش در چون یک ایدئولوژی شده حالا این بعدم بس خواهیم که چطوری دوستان ما گاهی ناچار دست به فلسفه میبرن یعنی به موقع باید با فلسفه اینو برای اون توضیح بدن حالا در نشست به امید خدا متشکل از حضورتون و متشکلی از همراهی شنوندگان عزیز شنوندگان گرامی رو در پایان این قسمت ششم تا شروع قسمت هفتم به خداوند متعال می‌سپاریم خدایا رو نگهدار. اصلا